جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل هشتون بخش دوم عجیبتر این که این شیوه ای ارعاب ممکن است برای یک جوجه فاخته به سرفه باشد همونطور که همه می دانن ماده در هر یک از شندانه پرندگان دیگر یک تخ میگذارد و آن والدین بیخبر از همه جا روی آن تخمه ها می نشیند. بنابراین یک جوجه فاخته با خواهد یا برادری که در کنارش پرورش یافته ژن مشترک ندارد بعضی از بچه فاخته ها به دلایل رزیلانهی که بعدن خواهیم گفت برادر یا خواهر ناتنی ندارم ولی حالا من فرض را بر این میگذارم که ما با یکی از این گونه های سر و کار داریم که برادران و خواهران رضایی و بچه فاخته ها در کنار هم زندگی میکنند اگر بچه فاختهای آنقدر بلند فریاد بکشد که توجه شکارگران را جلب کند چیز زیادی از دست داده است زندگیش را اما نامادری او از او هم بیشتر بازنده است شاید چهار بچه اش را از دست بدهد. بنابراین برای مادر به صرف این است که به او بیشتر از سهمش قضا بدهد و سودی که پاخته از این کار میبرد شاید به خطرش بیارزد این یکی از مواردی است که بهتر است برای توجیه آن به زبان رسمی ژنها برگردیم فقط برای اینکه به خود اطمینان دهیم که با این استعاره های زیاد از مرحله بعد نشده ایم. واقعا این فرض که بچه فاخته با سردادن فریاد چه کارگر بیا منو همه خواهر برادرم رو ببر پدر و مادر ناتنیش را تهدید می کند چه معنا دارد؟ به زبان جنی به معنی چیزیست که در پایین میآید. تعداد ژن بلند، فریاد، زدن فاخته در خزانه جنیش فراوان می شود زیرا فریاد بلند احتمال تغذیه شدن توسط والدین ناتنی را زیاد میکند دلیل واکنش نشان دادن والدین به این فریادها این است که ژن پاسخ به این فریادها در خزانه ژنی گونه ناتنی منتشر شده است دلیل انتشار آنها این بوده است که هر ناپدر و مادری که به فاخته غذای اضافی ندادند تعداد کمی از بچه های خودشان را توانستن بزرگ کنند تعدادی کمتر نسبت به آن پدر مادرهای رقیبی که به فاخه هایشان غذای بیشتری دادهاند. چنین است زیرا فریاد آن فاخه ها شکارگرها را به سوی لانه می گرچه احتمال اینکه که های فریاد نزن در نهایت سر از شکم شکارگر در بیاورند. کمتر از ژن فریادزن بود. ژن های نزن با دست نیافتن به آن سهم اضافی بیشتر مجازت شدند. بنابراین ژن پریادزنی در خزانه ژنی فاخت پخش شد. به دنبال استدلال انتظاعری که در بالا آمد زنجیره مشابهی از استدلال ژنی نشان میدهد که گرچه ژن چنین خوازی کردنی احتمالا در خزانه ژنی فخت پخش می شود، اما بعید است که در خزانه ژنی یک گونه معمولی پخش شود. یا اگر پخش شود حداقل دلیلش این نیست که شکارگرها را جلب کرده است البته در یک گونه معمولی دلایل دیگری برای پخش شدن ژن فریاد زدن ممکن است وجود داشته باشد همونطور که قبلا دیدیم و از قضا اثر آن جلب گاهگاهی شکارگران است اما در اینجا تأثیر گزینشی شکارگری اگر وجود داشته باشد در این جهت است که فریادها را آرامتر کند در مورد فرضی فاخته ها اگرچه در ابتدا متناقض به نظر میرسد اما تأثیر خالص شکارگر ممکن است این باشد که فریاد را بلندتر کند شواهدی وجود ندارد که به نحوی نشان دهد که آیا فاخته ها و دیگر پرنده هایی که به همان صورت انگلی جوجه اند واقعا از این روش اخاذی استفاده کنند اما آنها هم یقینا از سنگدلی چیزی کم ندارند برای مثال، نوعی پرنده به نام راهنمای کندوی اصل مثل فاخته ها، در لانه پرنده های دیگر تخم می‌گذارد. جوجه راهنمای کندوی اصل به نوک تیز خمیده مجهز است. به محض اینکه از تخم بیرون می آید وقتی چشمش هنوز باز نشده و بدنش بی پوشش و به عبارت دیگر ناتوان است با نوک داسبانندش به برادر و خواهرهای ناتنی خود حمله می کند و بدن آنها را تا حد مرگ پاره می کند. برادران مرده سر غذا رقابت نمی کند. فاخته بریتانیایی هم با کمی تفاوت به همین نتیجه می رسد. زیرا زمان خابیدن او روی تخم کوتاه هست و بنابراین جوجه فاخته زودتر از برادر و خواهرهای هملانش از تخم بیرون میآید، آید. به مزنگ بیرون آمد، چشم بسته و خودکار، اما با نتیجهی کشنده، تخم های دیگر را از لانه بیرون می اندازد. می زیر یک تخم و آن را در گودی بین دو بال خود جا می دهد بعد آهسته به لبه ی لانه نزدیک می شود، تخم را که بین برچستگی بالهایش نگه داشته پرت می کند. با همه تخ همین کار را می کند تا در لانه تنها او باشد و بنابراین، همه توجه والدین ناتنیش را به خود اختصاص دهد. یکی از قابل توجه ترین چیزها که سال گذشته متوجه شدم توسط فی آلوارز، ال آریستورینا و هسگورا سگورا از اسپانیا گزارش شده بود آنها توانایی والدین ناتنی بلقوه، قربانیان بلقوه فاخته را بررسی می تا مزاحم را پیدا کنند و بدانند تخمهای فاخته است یا جوجه در طی آزمایش آنها تخمها و جوجه فاخته ها همچنین برای مقایسه تخم و جوجه های, گونه های دیگر مثل پرستو را وارد لانه زاغی می کردند. در یک مورد جوجه پرستوی را درون لانه زاغی قرار دادند. روز بعد متوجه شدند یکی از تخم‌های زاغی روی زمین افتاده است. تخم نشکسته بود. بنابراین باز آن را برداشتند و سر جایش گذاشتند و زیر نظر گرفتند. چیزی که دیدن واقعا شگفتابر بود. آن پرستوی کوچک با رفتاری درست مثل جوجه فاخته تخم را از لانه بیرون انداخت. باره دیگران تخم را سر جایش قرار دادند و باز دقیقا همان اتفاق افتاد. جوجه پرستو به روش فاخته تخم را جایی بین دو برجستگی بالش نگه می داشت و و اقبعقب تا لبه لانه می‌رفت، تا جایی که خود تخم به زمین می افتاد. الوارز و همکارانش شاید از روی مسلحت سعی نکردن این مشاهده آور را توضیح دهند. چگونه چنین رفتاری میتوانست در خزانه ژنی جنی پرستو تکاملی آفته باشد؟ باید به چیزی در زندگی عادی پرستو مربوط میشد؟ شد. به طور عادی جوجه پرستو سر از لانه زاغی در نمی آورد. به طور عادی پرستوها در هیچ جای دیگر جز لانه خودشان دیده نمی شوند. آیا ممکن بود این رفتار یک سازگاری ضد فاخته باشد؟ آیا انتخاب طبیعی به سیاست ضد حمله در خزانه ژنی پرستو برتری می‌داد؟ ژنی برای کوبیدن فاخته ها با سلاح خودشان. به نظر می‌رسد واقعیت این است که معمولا فاخته در لانه پرستو تخم نمی‌گذارد. شاید دلیلش همین باشد. بر اساس این نظریه، آن تخم زاغی که در آزمایش بود به طور اتفاقی با چنان رفتاری مواجه شد. شاید به این دلیل که مثل تخم فاخته اندازش بزرگتر از تخم پرستو بود. ولی اگر جوجه پرستو بتواند تفاوت بین یک تخم بزرگ و تخمهای عادی پرستو را متوجه شود، یقینا مادر او هم باید متوجه این تفاوت بشود. در این مورد چرا مادر این کار را انجام نمی دهد؟ این کار باید برای مادر راحتتر باشد تا برای جوجه، همین اعتراض به نظریه‌ای که در آن رفتار پرستو به طور عادی منجر به بیرون افتادن توخمهای فاسد و دیگر اشکال درون لانه می‌شود نیز وارد است. باز هم والدین می توانند آن را بهتر انجام دهند و می‌دهند. این واقعیت که بیرون انداختن تخم از لانه که کاری سخت است و نیاز به مهارت دارد، توسط جوجه پرسوی ضعیف انجام می‌شود. در حالی که یک پرسوی بالغ یقیناً آن را خیلی راحتتر انجام می‌دهد. ما را از دیدگاه آن والد به این نتیجه می‌رساند که آن بچه ریگی به کفش دارد. به نظر من احتمالاً توضیح این قضیه اصلاً ربطی به فاخته ندارد. ممکن است از تصورش لرزه بر اندام بیفتد. اما آیا می‌شود بچه پرسو با هم چنین کاری بکنند؟ از آنجایی که آنکه اول به دنیا می‌آید قصد دارد بر سر امکانات والدین با برادرها و خواهرهایی که هنوز به دنیا نیامده رقابت کند این را به سود خود میبیند که زندگیش را با بیرون انداختن یکی از توخم ها از لانه شروع کند نظریه لاک حد مطلوب میزان توخم گذاری را از دیدگاه والدین در نظر می‌گیرد. اگر من یک پرسوی مادر باشم بهترین میزان جوجه گذاری از نظر من مثلا پنجتاست اما اگر یک جوجه پرستو باشم بهترین میزان جوجه گذاری از نظر من تعداد کمتری است البته به شرط اینکه من یکی از آنها باشم آن والد مقدار معینی از امکانات را در اختیار دارد و میخواهد آن را به طور مساوی بین پنج جوجهش تقسیم کند اما هر جوجه انتظار سهمی بیشتر از یک پنجم خود دارد او برخلاف فاخته همه آن امکانات را نمیخواهد زیرا با دیگر جوجه ها نسبت خویشاوندی دارد ولی بیشتر از یک پنجم می خواهد. او میتواند می تواند با بیرون انداختن فقط یک تخ سهم خود را به یک چهارم و با بیرون انداختن یک تخم دیگر به یک سوم برساند با ترجمه به زبان ژنی ژن جن برادرکشی احتمالا در لانه زیاد می شود زیرا احتمال وجود آن در بدن فرد برادرکش صد درصد است ولی احتمال وجودش در بدن قربانی او فقط پنجاه درصد است. اعتراض اصلی بر این نظریه اینکه که از باور کنیم کسی چنین رفتار سنگ دلانه ای را اگر واقعا رخ داده دیده باشد من هیچ توضیح متقاعد کننده ای برای آن ندارم. در جاهای مختلف دنیا نجات های متفاوتی از پرستو زندگی می کنند. می نجات فرانسوی با انگلیسی فرق دارد. از بعضی جهات نژاد فرانسوی به اندازه نژاد انگلیسی مورد مشاهده دقیق قرار نگرفته ولی من فکر میکنم احتمالا برادرکشی وجود دارد ولی به آن توجه نکردهاند دلیل من برای بیان چنین نظر غیر محتملی مانند فرضیه برادرکشی در اینجا این است که میخواهم به یک نکته کلی برسم و آن اینکه رفتار بیرهمانه بچه فاخته فقط یک حالت افراتی از رفتاری است که احتمالاً میان خانواده‌ها جریان دارد برادرهای تنی نسبت نزدیکتری به هم دارند تا فاخته به برادر خانده هایش. اما این تفاوت کمی و از نظر درجه است حتی اگر نتوانیم باور کنیم که چنین برادرکشی آشکاری بتواند تکامل یابد باید موارد زیادی از خودخواهی‌های خفیف وجود داشته باشد که در آنها هزینه که آن بچه به صورت خسارت وارده به خواهر و برادرهایش می‌پردازد در مقابل سودی که نصیبش می شود، بیش از دو به یک است و به آن می چربد. در چنین مواردی، مثل مورد زمان از شیر گرفتن، یک تضاد منافع واقعی بین والد و فرزند وجود دارد. در نبرد بین نسل ها، چه کسی احتمال برنده شدنش بیشتر است؟ آر دی الکساندر در مقالی جالبی می گوید، این سوال یک پاسخ کلی دارد. بر اساس نظر او والد همیشه برنده است اما اگر چنین باشد خواندن این فصل کتاب برای شما وقت هدر دادن است اگر نظر الکساندر درست باشد موضوع جالب برای ما به قرار زیر است برای مثال رفتار ایسارگرانه تکامل میابد نه به دلیل اینکه به منفعت جنهای خود فرد است بلکه چون فقط به نفع جنهای والدین اوست به قول الکساندر دستکاری والدین از نظر تکاملی علت دیگری برای رفتار ایسارگرانه است جدا از انتخاب خیشاوند که صریح و بیشاعبه است بنابراین لازم است استدلال الکساندر را به دقت مطالعه کنیم و کاملا متوجه باشیم که اشتباه او در کجاست در واقع باید این کار را به شکل ریاضی انجام داد اما ما با پرهیز از کاربرد مستقیم ریاضیات در این کتاب امکان ارائه اشکال نظر الکساندر را به صورت یک مفهوم حسی فراغم آورده ایم. نقطه اصلی مربوط به در این نقل قول تلخیص شده است. فرض کنید بچه ای باعث توضیع نابرابر امکانات به نفع خود شود و به این ترتیب در کل تولید مثل مادر را کاهش دهد. ژنی که به این ترتیب شایستگی یک فرد را وقتی جوان است بهتر می کند نمی تواند در بزرگسالی او سطح آن را بیشتر نیاورد زیرا چنین جهش یافته ای در بخش روبه به افزایشی از زادگان آن فرد جهش یافته وجود خواهد داشت این امر که ژنی را که اخیراً جهش یافته مورد توجه قرار می دهد نکته اساسی استدلال او نیست بهتر است ژن کمیابی را در نظر بگیریم که از یکی از والدین به ارث رسیده است شایستگی از نظر فنی به معنای خاص موفقیت در تولید مثل است. لبه مطلب الکساندر این است جنی که باعث می شود بچه در کودکی به چیزی بیش از سهم خود به بهای کل بروندادی که پدرش و مادرش از نظر تولید مثل دارند چنگ بزند در واقع احتمال زنده ماندن خودش را بیشتر می کند. ولی سزای این کار را وقتی میبیند، که خودش یک والد شده باشد زیرا فرزندانش که احتمالا همان ژن خودخواه را به ارث بردند باعث می شوند او از نظر موفقیت کلی در تولید مثل افت کند او در چاهی که خود کنده است می افتد. بنابراین چنین ژنی موفق نیست و والدین احتمالا همیشه برنده این مبارزند این استدلال باید فورا تردیدی در ما برنگی زیرا بر مبنای یک عدم تقارن ژنی است که در واقع وجود ندارد الکساندر طوری از واجه های والد و فرزند استفاده می کند که گویی تفاوت ژن اساسی بین آنها وجود دارد همانطور که دیدیم گرچه عملا بین والد و فرزند هایی هست مثلا والدین بزرگتر از فرزندان هستند و بچه ها از بدن آنها بیرون می‌آیند، ولی در واقع هیچ عدم تقارن بنیادینی وجود ندارد از هر طرف که نگاه کنید میزان خیشاوندی پنجاه درصد است. برای به تصویر کشیدن منظورم گفته الکساندر را تکرار می کنم. البته با جابجا کردن واجه های والد و بچه و دیگر کلمه ها در صورت لزون فرض کنید یک والد جنی دارد که باعث توضیع یک نواخت امکانات والدین می شود. جنی که به این صورت شایستگی یک فرد را وقتی والد است بهتر میکند نمیتواند سطح شایستگی او را در کودکی پایین نیاورده باشد به این ترتیب به نتیجه ای می میرسی مخالف نظر الکساندر چه بود این بود که در هر تضاد بین والد و فرزند احتمالاً فرزند برنده است معلوم است که اشکالی در اینجا وجود دارد هر دو استدلال بیش از حد ساده شده اند هدف من از این نقل قول وارونه شده اثبات نظری مخالف الکساندر نیست فقط میخواهم نشان دهم نمیتوان با آن صورت مصنوعا غیر متقارن استدلال کرد هم استدلال الکساندر و هم استدلال من از بابت نگاهی که از دیدگاه یک فرد دارم دارای اشکال است الکساندر از دیدگاه والد و من از دیدگاه فرزند به باور من وقتی از اصطلاح فنی شایستگی استفاده میکنیم راحتی این اشکال پیش می میآید به همین دلیل من از کاربرد این واژه در کتاب پرهیز کردم. در واقع فقط یک چیز وجود دارد که دیدگاهش در تکامل مطرح است و آن ژن خودخواه است. ژنی که در بدن کودک است به خاطر توانایی در گول زدن والدین برگزیده می شود. جنهای بدن والدین به خاطر توانایی در زرنگی کردن با بچه انتخاب می شوند. این امر که جنهاي یکسانی از هر دو در بدن کودک و والد هر دو موجود باشد متلاغز نیست. ژن‌ها به خاطر توانایی‌هایشان در بهترین استفاده از اهرام قدرتی که در اختیار دارند برگزیده می‌شوند. آنها از فرصت‌های مناسب به سود خود استفاده می‌کنند وقتی یک ژن در بدن یک بچه نشسته است فرصتی که برای استفاده در اختیار دارد متفاوت است با وقتی که آن ژن در بدن یک والد است. بنابراین سیاست مدوب او در این دو مرحله از زندگی متفاوت است. دلیلی ندارد مانند الکساندر فرض کنید که آن سیاست دوم باید اولی را از میدان بدر کند. از راه دیگری هم میتواند در مخالفت با الکساندر استدلال کرد. او از یک سو عدم تقارن نادرستی را در رابطه والدین و فرزند فرض میگیرد و از سوی آن را بین خواهر و برادر مفروض میداند. یادتان باشد بر اساس نظر تریورز بهایی که یک بچه خودخواه برای گرفتن سهم بیشتر می‌پردازد، به خطر انداختن خواهر و برادرهایش است. اما خواهر و برادر مورد خاصی از خیشاوندی با نسبت پنجاه درصدند. ارزش بچه آینده خود آن بچه خودخواه برای او از خواهر و برادرهایش نه بیشتر و نه کمتر است. بنابراین باید کل هزینه خالصی، که از کسب امکانات بیش از سهم عادلانه خود به دست میآید، اندازهگیری شود، نه فقط بر حسب خواهر و برادرهایی که از دست می روید، بلکه با فرزندان آینده ای که با خودخواهی های خود نسبت به یکدیگر از دست می روید. نظر الکساندر در مورد اشکال انتشار خودخواهی یک کودک به فرزندانش و به این ترتیب کم کردن برونداد تولید مثلی او در دراز مدت، به خوبی قابل درک است اما فقط به این معنی که باید در معادله آن را به سمت هزینه بیافزاییم برای یک بچه تا وقتی خود قاه بودن به صرف است که سود خالصی که گیرش میآید حداقل دو برابر خرجی باشد که روی دست خیشان نزدیکش نگذارد اما نه فقط خواهر و برادر بلکه فرزندان آینده را نیز باید از خیشان محسوب کرد هر فرد باید ارزش رفاه خود را دو برابر ارزش رفاه برادران خود بداند که فرض اصلی تریورز است. اما او باید به خودش هم دو برابر هر یکی از فرزندان آیندش بها دهد. این نتیجه گیری الکساندر که در این تضاد منافع امتیازی به نفع والدین کارسازی شده است صحیح نیست. الکساندر علاوه بر این مطلب اساسی در مورد جمع استدلالهای واقعی تری دارد که ریشه در عدم تقارن حتمی در رابطه والد و فرزن دارد. والد یک شریک فعال است. کسی که عملا برای به آوردن قضا و بقیه چیزها کار می کند و بنابراین در جایگاهی است که سرنخ را در دست دارد. اگر والد تصمیم بگیرد، امکانات خود را پس بگیرد، فرزن کاری نمی تواند بکند چون کوچکتر است نمی تواند انتقام جویی کند. بنابراین والد در موقعیتی است که بی توجه به خواست فرزند اراده خود را تحمیل می کند. معلوم است که این بحث نادرست نیست چون در این مورد آن عدم تقارن فرزی وجود دارد. والدین واقعا از بچه بزرگتر، قویتر و دنیا به نظر می رسد همه ورقهای خوب را در این بازی در دست دارند. اما بچه ها چند برگ برنده در آستین دارند. مثلا می شود غذا رو به طور کاملا مساوی بین آنها تقسیم کرد اما بهترین صورت این است که به آنهایی که بهتر از غذا استفاده میکنند کمی بیشتر داد. بهترین حالت برای والدین است که هر بچه به او بگوید چه اندازه گرسته است و همونطور که دیدیم به نظر میرسد چنین نظامی تکامل یافته است. اما بچه‌ها در موقعیتی هستند که میتوانند راحت دروغ بگویند چون دقیقا میدانند چقدر گرسنه اند. در حالی که والدین آنها فقط حدس میزنند که آنها راست میگویند یا نه تقریبا برای والد فهمیدن دروغهای کوچک غیر ممکن است گرچه احتمالا دروغهای شاخدار را میفهمد باز دوباره خوب است والد بداند که کودکش چه وقت خوشحال است و برای بچه خوب است که شاد بودن خود را به پدر و مادرش نشان دهد نشانه مثل آرام صدا دادن و لبخند زدن شاید به این دلیل برگزیده شدند که به والدین میفهمانند کدام کارشان بیشتر به بچه بهره میرساند. دیدن بچهی که میخنده صدای خرخور آرام یک بچه گربه برای هر مادر رضایت بخش و تایید کننده است. به همان مفهومی که غذا در معده موشی که در راه روهای تو در توز تعیید کننده است. اما همین که لبخند شیرین یا خورخور بلند او رضایت والد را نشان داد دیگر بچه در موقعیتی قرار دارد که میتواند با استفاده از لبخند یا خورخور والد را به میل خود بچرخاند و از امکانات او بیش از سهم عادلانه خود طلب کند بنابراین برای این سوال که چه کسی برنده نبرد بین نهست هاست هیچ پاسخ کلی وجود ندارد آنچه نهایتاً حاصل می شود از وضعیت مطلوب مردنظر فرزند و وضعیت مطلوب مردنظر والدین است. این کشمکش با کشمکش بین فاخته و پدر و مادر ناتنیش قابل مقایسه است. ولی به یقین با آن شدت حولناک نیست. زیرا دو دشمن از نظر ژنی منافع مشترکی دارند. دشمنی آنها حد دو مرز دارد یا فقط در زمانهای حساسی پیدا می شود. با این حال بچه خود فرد ممکن است بسیاری از روش هایی را که فاخته به کار میبرد مثل گول زدن و سوء استفاده کردن را به کار گیرد ولی دیگران هم اندازه خودخواهی ندارد که در فاخته میبینیم این فصل و فصل بعد که در آن تضاد بین زوجها را مورد بحث قرار میدهیم ممکن است بسیار بدبینانه جلوه بکند و شاید حتی بعضی پدر مادرها را که خود را وقف بچه ها و وقف همدیگر کردن نگران کنند من بار دیگر تأکید می کنم که صحبت از انگیزه های آگاهانه نیست هیچکس کس نمی گوید که بچه ها عمدن و دانسته پدر و مادر خود را گول میزنند. چون جن خود در درونشان است تکرار می کنم وقتی چیزی میگوییم مثل بچه باید هیچ فرصتی برای تقلب، دروغ فریب و سو استفاده را از دست ندهد واجه باید را به مفهوم خاصی به کار بردم. من از این نوع رفتار به عنوان یک رفتار اخلاقی یا رفتار مطلوب جانبداری داری نمی کنم. فقط این را می گویم که انتخاب طبیعی بچههایی را که به این صورت رفتار کنند. بر می و اینکه به این ترتیب با مشاهده جمعیت ها در محیط های طبیعی باید انتظار دیدن تقلب و خودخواهی را در خانواده داشته باشیم. عبار بچه باید تقلب کند یعنی در خزانه ژنی ژنهایی که بچه را به تقلب وامی دارد برتری داده می‌شود اگر بشود یک درس اخلاقی از آن گرفت این است که ایسارگری را باید به بچه یاد داده. اینطور نیست که جزئی از سرشت ذاتی او باشد ژن خودخوا نوشته ریچارد داکینز پینوشت های فصل هشتم نبرد نه, نه در صفیه 124 گفته شده روبرد تریورز در 1972 این مسئله را به شکل شسته رفته ای حل کرد روبرد تریورز که مقاله اوایل سال هفتاد او از جمله بیشترین مایه های الهام من در نوشتن چاپ اولین کتاب بود و نظرهای او ویژه در فصل هشت آمده است بل اخر کتاب تکامل اجتماعی خودش را در آورد. من آن را نه به خاطر محتوا بلکه به خاطر سبکش توصیه می کنم فکر شفاف اصول علمی صحیح و کمی بیخیالی انسان انسان‌منشانه تا آن زیادی جدی بودن را دست بیاندازد و چاشنی گریزهایی ب... به زندگی خودش که نمیتوانم از ذکر یکی از آنها در اینجا خودداری کنم زیرا خصلت او را نشان میدهد. تریورز حاوی خود را از مشاهده رابطه دو بابون نر رقیب در کنیا چنین بیان می کند. هایجون من دلیل دیگری داشت و آن احساس نزدیکی ناخودآگاهی با آرتور بود. آرتور نر جوان سرحالی در اوج کمال بود. فصل جدید تریورز درباره تزاد والدین فرزندان موضوع را روزآمد می کند. در واقع غیر از چند مورد اتفاقی جدید کم تر چیزی باقی مانده است که بتوان به, به مقالی 1974 او اضافه کرد این نظریه از امتحان زمان سر بلند بیرون آمده است مدل های ریاضی و ژنی مفصل تر بودند برای اینکه استدلال های غالبا کلامی تریورز در واقع ریشه در نظرهای پذیرفته شده ی داروینی دارند توضیح عبارت صفحه 135 بر اساس نظر او والد همیشه برنده است. الکساندر در کتاب 1980 خود داروینیزم و روابط انسانی صفحه 39 بدون جار و جنجال میپذیرد در این استدلال که در جدال بین والدین و فرزندان پیروزی والد پیامد ناگزیر فرسای بنیادی داروینیزم بوده اشتباه کرده است. حالا به نظرم میرسد رسد این نظر او را که در تضاد ها والدین از امتیازات نابرابری نسبت به فرزندان برخوردارند میتوان با نوع دیگری از استدلال که من از اریک چارنو هم تقویت کرد چارنو در باری حشرات اجتماعی و منشأ طبقه سترون نوشته است ولی استدلال او کاربرد وسیعتری دارد و من صورت کلیتر آن را شرح می‌دهم ماده جوانی از یک گونه تک همسر را در نظر بگیرید لازم نیست من حشره باشد در آستانی جوانی مشکل او این است که باید تصمیم بگیرد برود و خودش تولید ملز کند یا در لانه والدین بماند و از خواهر برادر کوچکترش مراقبت کند از روی شیوه زادآوری در گونه خود مطمئن است که مادر تا مدتی زیاد برایش خواهر و برادر تنی می آورد بر اساس منطقه همیلتون از نظر جنی این خواهر و برادرها همانقدر برای او با ارزشند. بچه های خودش از نظر نسبت ژنی. انتخاب یک از این دو روش برای او عصوی است. فرق نمی کند بماند یا برود. اما برای والدینش اینطور نیست که به قضیه بی تفاوت باشم. اگر از دیدگاه مادر پیرش به موضوع نگاه کنید بحث انتخاب بین نوه و بچه است. ارزش بچه های جدید از نظر ژنی دو برابر ارزش نوه های جدید است. اگر تزاد والد و فرزند را در این بدانیم که آیا فرزند می رود یا می ماند و در امور لانه یاری میرساند چارنو بر این باور است که این تضاد مشکل والدین است. زیرا اصلا والدین هم که قضیه را به صورت تضاد می بینند. این کمی شبیه مسابقه بین دو دونده قهرمان است که به یکی فقط اگر برنده شود ولی به حریفش چه ببازد چه ببرد هزار پوند تعلق می گیرد. ما باید این انتظار را از دونده اول داشته باشیم که بیشتر تلاش کند و در غیر این صورت اگر هر دو مساوی کنند احتمالا او برنده است. البته قوت نکته مرد نظر چارنو بیش از توان این قیاس است زیرا هزینه با تمام قواد دویدن انقدر زیاد نیست که بسیاری را از این کار باز دارد چه پاداش و مادی با آنها داده شود یا نشود برگزیده های این چنینی در المپیک از نظر بازیهای داروینی بیشتر تجملات ظاهری به شمار میآیند تلاشی که در یک جهت صورت میگیرد همواره با تلاش ناموفقی که در جهت دیگر از جبران می شود است که انگار هرچه توان بیشتری صرف یک مسابقه بکنی به خاطر خستگی ناشی از آن احتمال اینکه در مسابقه بعدی برنده باشی کمتر می شود اوضا در گناه های مختلف متفاوت است بنابراین هرگز نتیجه نتیجه بازیهای داروینی را پیشبینی کنیم با وجود این اگر فقط نزدیک بودن نسبت ژنی را در نظر بگیریم و نظام را تک همسری فرض کنیم طوری که هر دختر مطمئن باشد که خواهر و برادرهایش تنیاند میتوانیم انتظار داشته باشیم که آن مادری پیری که برای مراقبت از بچه هایش دخترش را پیش خودش نگه میدارد موفق باشد از این کار مادر به همه چیز میرسد در حالی که خود دخترم انگیزه ای برای مقاومت در برابر این خواست مادر ندارد زیرا از نظر ژنی بین دو گزینه موجود یعنی فرزندانش و خاربردنش برایش تفاوتی متصور نیست یک بار دیگر مهم است تاکید کنیم که این هم از آن استدلال های در صورتی که شرایط یکسان باشد است گرچه اغلب شرایط یکسان نیست ولی استدلال چارنو کارایی دارد. در هر حال استدلال کارآمد الکساندر در مورد برتری والدین بزرگتر، قویتر و مانند اینها بودن والدین خوب جا افتاده است.